Thank you. مخشه چهار روم همساگه ها بود که ترلکوفسکی در اثر اصرار مکرر دوستانش به خصوص اسکوب، منشی یک وکیل دعاوی و سایمون فروشنده لوازم خانه مهمانی کوچکی به مناسبت ورود به خانه جدید ترتیب داد چندتا از همکاران ادارهش هم دعوت شده بودند به علاوه تمام دخترهای جوانی که در دسترس بودند مهمانی را شنبه شب برگزار کردند تا فارغ از دلشورهی رفتن به سر کار در روز بعد با خیال راحت خوش بگذرانند هرکس با خودش چیزی برای خوردن یا نوشیدن آورده بود تمام سوروسات مهمانی را رو روی میز چیدند از آنجایی که ترلکوفسکی در خانه به تعداد کافی صندلی برای همه مهمان ها نداشت، تخت خواب را تا نزدیکی میز جلو کشید و بقیه مهمان ها را رو روی آنجا داد. که این البته با خنده دخترها و های کنای آمیز مردها همراه بود. حقیقت این بود که آپارتمان تا به حال هرگز چنین شب با روح و با نشاطی را به خود ندیده بود. ترلکوفسکی از اینکه باعث و بانی این مهمانی بوده عمیقاً احساس غرور میکرد مثل آپارتمان خود او هم در گذشته هرگز مرکز چنین توجهی قرار نگرفته بود. وقتی داستانی تعریف می کرد، بقیه سکوت می کردند. اگر مطلب بامزهی بود، به با آن می خندیدند و حتی با دست زدن او را تشویخ می اما مهمتر از همه این بود که او مرتب نام خودش را از زبان دیگران می مثلا یک نفر می گفت، من با ترکوفسکی بودم که... یا؟ دیروز با ترکوفسکی؟ یا ترکوفسکی گفت در طول مهمانی او واقعا پادشاهی می کرد ترکوفسکی ظرفیت زیادی برای نوشیدن مشروب نداشت اما برای آنکه خوشی و نشات مهمانانش را زایه نکند حتی بیشتر از بقیه مشروب خورد تعداد بطری های خالی پیوسته روی افزایش بود و دخترها هم با زمزمه های آمیزشان مردها را به بیشتر نوشیدن تشویق می کردند به پیشنهاد یک نفر چراغ اتاق را خاموش و چراغ اتاق مجاور را روشن کردند تا از نور تند اتاق کاسته شود. بعد هم همگی روی تخت دراز کشیدند. چیزی نمانده بود ترکوفسکی در تاریکی اتاق به خواب برود. اما مجاورت این همه زن و این واقعیت که آرام آرام سرش به درد افتاده بود او را بیدار نگه داشت. بین سایمان با اسکوپ بحثی در گرفت در باب اینکه برای گذراندن تعطیلات کدام یک مناسبتر است؟ رفتم به کنار دریا یا رفتم به کو؟ سایمون که صدایش را کمی کلوفت کرده بود؟ گفت؟ معلومی که رفتم به کو؟ کو نوردی مفرحترین تفری دنیاست چشم اندازها دریاچه ها, جنگل ها و هوای پاکی که هیچ وقت نظیرش تو شهر پیدا نمیشه. هرقدر که خواستید میتونید پیاده روی کنید یا از کوه بالا برید وقتی من میرم کو، ساعت پنج صبح از خواب بلند میشم. غذای سردی میخورم. کود پشتیم و بر میدارم و تمام روز گردش میکنم. صرف تنها بودن اون بالا، هزاران پا بالاتر از سطح زمین، همراه با چشمانداز باشکوهی که زیر پا گسترده شده، شگفت انگیز ترین احساسیه که من میشناسم. اسکوب خندید. نه برای من. هر زمستان، و البته هر تابستان، آدم داستان زیادی میشن به درباره کسانی که یا از پرتگاه سقوط کردند یا زیر بهمن مدفون شدن یا چند روز داخل تلکابین گیر افتادند. سایمون در جواب گفت دریا هم همینطوره، روزنامه ها همیشه پر هستن از اخبار کسانی که توی دریا غرق شدن. تابستان امسال هر بار که رادیو رو باز میکردم داشت ایک مورد تازه رو گزارش میداد. هیچ ربطی به هم ندارن اونایی که توی دریا غرق میشن یک مشت احمقن که میخوان با شنا کردن تو جاهای دوردست و عمیق خودنمایی کنند بیشتر حوادث کوهنوردی هم همینطوره کسانی که تنها و بدون تجهیزات ضروری و تعلیمات لازم به کوه میرن کم کم بقیه هم وارد بحث شدند ترکوفسکی گفت ترجیح خاصی ندارد اما به نظرش کوهنوردی برای سلامتی مفیدتر از رفتن به دریاست دیگران در عین تعییل دیدگاه او، با اضافه کردن نظرات و عقاید خودشان، آن را در نهایت به چیز کاملا متفاوتی تبدیل کردند. ترلکوفسکی با حواس پرتی گوش می داد. تمام حواسش متوجه دختری بود که در انتهای دیگر تخت دراز کشیده بود. دختر به حالت نیمه لمیده روی تخت به پشت دراز کشیده بود و بدون کمک گرفتن از دستهایش، با فشار دادن پاشنه پای راست به پنجه پای چپ کفشش را از پا در میآورد. و وقتی بالاخره کفش به زمین افتاد پنجه پای راستش که با جوراب نایلونی پوشیده شده بود به سراغ پاشنه پای چپ رفت. و آنقدر با سماجت به آن فشار آورد تا بالاخره لنگ ای دوم کفشم از پایش درآمد. بعد به پهلو دراز کشید زانوهایش را تا نزدیک سینه هایش جمع کرد و همانطور بی حرکت ماند. ترلکوفسکی از همانجا که نشسته بود سعی کرد ببیند که دختر زیبا هم هست یا نه اما موفق نشد. همین دید که دختر باز هم در حال جابجا جا شدن است. ابتدا پاهایش را کاملا صاف میکرد بعد دوباره تا سینههایش بالا میکشید. مثل اینکه در حال شنا باشد و به این ترتیب خودش را کم کم به ترلکوفسکی نزدیک تر می سخت. ترلکوفسکی که به خاطر زیاد روی در نوشیدن شراب و سردردش گیجتر از آنی بود که اقدامی بکند، صرفم با حیرت و ناباوری به تماشای دختر ادامه داد. گهگاه تکه‌های پراکنده ای از گفتگویی که در اطرافش جریان داشت، گویی از ای بسیار دور به گوشش میخورد. ما نه تو اشتباه میکنی، دریا، رطوبت آب و هوای معتدل. معذرت میخوام اکسیژن؟ دو سال پیش با چند تا از دوستانم؟ گاوهای نر ماده گاوها، ماهیگیری بیماری، مرگ. بهتر موضوع بس رو عوض کنیم. دختر سرش را رو روی زانوی ترکوفسکی گذاشت و همانطور باقی ماند. ترلکوفسکی هم خودش را با پیچاندن طره های موی سر دختر به دور انگشتانش مشغول کرد. با خودش فکر کرد چرا من. بعد از مدتها بخت و اقبال به من روی کرده. آن وقت این سردرد لعنتی نمیگذرد از فرصت استفاده کنم. عجب احمقی هستم. دختر که دیگر حسلش از دست تررکوزکی سر رفته بود، دست او را با قاطعیت گرفت و روی شانهش گذاشت. تررکوزکی با خودش فکر کرد بعد چی؟ و بلا فاصله تصمیم گرفت، آقلانه ترین از که هیچ حرکتی از خود نشان ندهد. دختر که پیوسته شاهد ناکامی تلاشهایش بود، کمی دیگر خودش را رو روی تخت بالا کشید تا بتاند سرش را رو روی سینه تکوسکی بگذارد. بعد هم شروع کرد به جلو عقب کردن سرش به امید آنکه با این کار او را تحریک کند. اما وقتی تکوکی با لجاجت جاجت به اعتنا باقی ماند ران پای ترلکوفسکی را نیشگون گرفت. ترلکوفسکی با بیاعتنایی اشراف منشانه و لبخند پر نخوتی که بر لب داشت گذاشت تا او هر چه بکند. یعنی این احمق به دنبال چه چیزی بود که او را اقوا کند؟ اما چرا از میان همه او را انتخاب کرده بود؟ ناگهان سر دختر را با خشم کنار زد از روی تخت بلند شد و روی پاهایش جهید حالا علتش را میفهمید. این آپارتمان ترکفسکی بود که توجه دختر را جلب کرده بود نه خود او حالا دختر را به یاد می آورد. نامش لوسی بود و همراه آلبرت آمده بود آلبرت به او گفته بود که دختر به تازگی از شوهرش جدا شده و در این میان آپارتمان به شوهرش رسیده. پس همین بود. به او به خاطر آپارتمانش ابراز عشق می کردند. ترکوفسکی با صدای بلند خندید. مدافعین رفتن به دریا و طرفداران کوهپیمایی برای اینکه بتوانند در این هیاهو صدای هم را بشنوند بلند بلند حرف می زدند. دختر که هنوز روی تخت بود به گریه افتاده بود. درست در همین لحظه بود که یک نفر از بیرون درزد. ترکووسکی که بلافاصله مستی از سرش پریده بود رفت تا در را باز کند. مردی که در پاگرد ایستاده بود بلند بود و لاغر خیلی لاغر و به طور غیرعادی پریده رنگ. رب را بلندی به رنگ قرمز تیره دن داشت. ترکوفسکی زیر لب گفت: موسیو؟ مرد با لحن تهدید گفت: شما سر و صدای زیادی راه انداخته اید موسیو. ساعت از یک صبح هم گذشته و شما سر و صدای زیادی راه انداخته اید. ترکوفسکی گفت اما موسیو فقط چند تا از دوستان من اینجا هستند و ما آهسته صحبت می کردیم. آهسته؟ مرد براشفت شفت و صدایش به طور قابل ملاحظه ای بالا رفت. من طبقه بالای شما ساکن هستم و میتونم کلمه به کلمه ی حرفاتون رو بشنوم. از این گذشته شما سندلی ها رو جابجا میکنید. توی اتاق بالا و پایی میرید و با کشیدن و کفشاتون روی زمین سراسدای وحشتناکی میکنید. این رفتار قابل تحمل نیست. نکنه قصد دارید باز هم به این کارتون ادامه بدید. مرد حالا دیگر داشت داد میزد. ترکوفسکی وسوسه شده بود بگوید این اوست که دارد همه را از خواب بیدار می کند، اما بدون شک این دقیقا همان چیزی بود که او میخواست تا به این وسیله توجه تمام ساکنان ساختمان را به رفتار ترکوفسکی جلب کند زن پیری که خودش را تنگ در لباس خواب پوشانده بود روی راه که به طبقه چهارم منتهی میشد ایستاده و به جلو خم شده بود تا تواند از همان جا شاهد آنچه باشد که در پاگرد در حال وقوع بود ترلکوفسکی با دستپاچیگی گفت ببینین موسیو، از اینکه سر و صدای ما شما را از خواب بیدار کرده واقعا متاسفم بهتون اطمینان میدم که از این به بعد بیشتر مراقب باشیم مرد که به سادگی دستبردار نبود گفت آخه این چه کاریه بیدار کردن مردم در ساعت یک صبح آخه این چه رفتاریه ترلکوفسکی که صدایش را اندکی بلند کرده بود تکرار کرد ما مراقب خواهیم بود اما شما هم من هرگز شاهد چنین رفتاری نبودم تا حالا هیچ وقت اینجا چنین هیاهویی سابقه نداشته یعنی دیگران هیچ اهمیتی برای شما ندارن کسی به خوشگذرانی شما اعتراضی نداره اما کسانی هم هستن که باید سر کار برن فردا تعطیل آقا من هم دلیلی نیوبینم که نتونم چند تا از دوستانمو شب به شب به خانه‌ام دعوت کنم حتی شنبه شبها هم هیچ دلیلی برای چون این جار و وجود نداره مفسیه ترکوز زیر لب تکرار کرد ما بیشتر مراقب خواهیم بود و در را بست هنوز هم میشد صدای قرولند و شکایت مرد را از پشت در شنید به نظر می که حالا روی سخنش با پیر زن است چون صدای زنانه ای پاسخش را داد اما بعد از دو یا سه دقیقه سکوت برقرار شد کرلکوفسکی دستش را رو روی قلبش گذاشت. شدت ضربان قلبش دو برابر حد عادی بود و عرق سردی روی پیشانیش نشسته بود. بقیه که با آمدن مرد برای چند لحظه ساکت شده بودند، بس را از سر گرفتند. هرکس میخواست نظرش را درباره این قبیل حمسایه‌های ابراز کند. داستانهایی را برای هم تعریف کردند از آنهایی که مجبور بودند با چنین مشکلاتی سر و کله بزنند و اینکه بالاخره چگونه از پس آنها برآمدند. کم کم بحث به بهترین شیوه های ممکن برای مقابله با چنین مزاحمت هایی کشیده شد. بعد با گذشتن از رای حل های آبکی و ناکارآمد، به شیوه های خیالی اما به مراتب کارآمدتر رسیدند. یکی از رای حل که بسیار هم رضایت بخش مینمود، ایجاد سوراخی در سقف و فرستادن دسته انکبوت و اقرب زردار به طبقه بالا بود. همگی از این فکر با صدای بلند خندیدند. ترکوفسکی در عذاب بود. هر بار که صدای مهمانانش بلند میشد، با تحکم آنها را دعوت به سکوت میکرد. آنها هم عمدن و به قصد تحریک ترکوفسکی می میکردند و حتی با صدایی بلندتر از قبل میخندیدند و صحبت میکردند. در این لحظه به قدری از دستشان عصبانی شده بود که دیگر به عنوان میزبان اهمیتی به نحوه رفتارش به آنها نمیداد. به اتاق بغلی رفت تا را بیاورد و وقتی برگشت بدون توجه به اینکه چه کسی مال چه کسی را میگیرد، کتا را میانشان پخش کرد و بعد همه را تقریبا به زور به سمت پا گرد راند. آنها هم متقابلا هنگام پایین رفتن از پلهها، تا جایی که می توانستند سرا صدا به را انداختند و پیوسته به اینکه او الان باید بسیار نگران و دلواپس باشد خندیدند. ترلکوفسکی با خودش فکر کرد احتمالا می توانست لذت بسیاری از ریختن روغن داغ روی سرشان ببرد. به داخل آپارتمان برگشت و در را پشت سرش غفر کرد موقعی برگشتن آرنجش به آرامی به یک بطری خالی که روی میز بود خورد بطری با صدای شبیه شلیک گلوله روی زمین متلاشی شد پیامد آن زیاد به طول نیانجامید از طبقه پایین های شدیدی به کف و اتاق وارد آمدند صاحبخانه ترکوفسکی از خودش خجالت میکشید احساس که از سرتاپهایش از خجالت سرخ شده از خودش و رفتار غیر اش شرمنده بود. آدم بی ملاحظه بود که قیل و غار پذیر جشن و سرورش تمام ساکنان ساختمان را از خواب بیدار کرده بود. آیا غیر از این بود که او نسبت به حقوق دیگران بی اعتناب بود؟ آیا او صلاحیت زندگی در جامعه متمدن را نداشت؟ دلش میخواست یک گوش بنشیند و گریه کند. چه چیزی می توانست در دفاع از خودش بگوید؟ چطور در برابر ضربات این کار ناپذیری که به کف آپارتمانش خورده بود از خود دفاع کند؟ چگونه میتوانست بگوید؟ بله من گناه کارم و اعتراف میکنم، اما در اون شرایط؟ کار دیگه از هم ساخته نبود؟ جعت مرتب کردن آپارتمان را نداشت می به وضوح همسایه هایش را در خیالش مجسم کند که منتظر کوچکترین بهانه هستند تا به سقف و کف و اتاقش بکوبند. همانجا که ایستاده بود کفشهایش را درآورد و در سکوت طول اتاق را پاورچین طی کرد تا چراغ را خاموش کند. بعد هم در حالی که دستهایش را دراز کرده بود تا از هر برخورد برخورده سر و صدا با اسی اتاق اجتناب کند، راهش رو از میان تاریکی باز کرد و خودش را رو روی تخت خواب انداخت. فردا مجبور بود با همسایه ها روبرو شود. آیا شجاعتش را خواهد داشت؟ حتی فکر کردن به آن باعث تحلیل رفتن تدریجی قوایش میشد. اگر صاحبخانه در این بار توضیح میخواست، چه جوابی میتوانست بدهد؟ از دست خودش عصبانی بود. ترتیب دادن چنین مهمانی در آپارتمانش حماقت محض بود. اگر احیاناً به دنبال راهی برای خلاص شدن از آپارتمان میگشت، این احتمالاً بهترین راهی بود که میتوانست فکرش را بکند. با وجود پول زیادی که خرج کرده بود، اصلاً به او خوش نگذشته بود و مهمترین اینکه آیندهش را هم به مخاطره انداخته بود. تمام ساکنان ساختمان را از خودش رنجانده بود و این یعنی یک شروع درخشان. با این افکار سرگیجاویری که به سرش افتاده بود، بالاخره به خواب رفت. ترس روبرو شدن با همسایه های عصبانی او را تمام صبح یکشنبه در خانه نگه داشت. با این حال همچنان احساس ضعف می کرد. حتی ریشه ی موهایش دردناک شده بود. تنها نگاهی به اطرافش کافی بود تا سردرد وحشتناکی بگیرد. ظاهر به هم ریخته یا جنبه ناخوشایند وقایه شب گذشته را با نگاهی بدبینانه و تهنه آمیز به یادش باقی از شب گذشته، در همه جای آپارتمان دیده می شدند. درست مثل اشیای ای که امواج دریا با خود به ساحل می آبرند. اما با بازگشت آب همانجا روی ساحل باقی می مانند. بطری های خالی، خاک سر سیگار های چسبیده به لرد قهوه در ته فنجانها، ها، تکه شکسته یک بشقاب، چند تکه گوشت که زیر پاشنهای کفشه یکی از مهمان های سر به هوا روی زمین له شده بود. لیوان های لکه دار شده از شراب قرمز و پر از تحصیگار. زمان و انرژی زیادی را صرف تمیز کردن آپارتمان کرد. و در پایان خودش را در برابر حجم انبوهی از زباله دید. حتی فکر پایین بردن زباله ها پیش از تاریک شدن هوا او را به وحشت می انداخت. تا ان موقع چاره ای نداشت جز اینکه این بوی تهوه آور و زننده را که با بیرحمی تمام و با هر نفسی که میکشید او را به یاد وقایه شب گذشته میانداخت تحمل کند. اما هرچه میگذشت بیشتر متوجه میشد که بیش از این نمیتواند منتظر بماند. حتی دعوا با همسایه ها هم به تحمل این بود ترجیح داشت. تلاش دلیرانهای به خش داد تا سود زنان از پله ها پایین برود. مطمئنا اگر او را با روحی شاد و سرزنده میدیدند نمی نمیکردند او را سرزنش کرده یا حتی توبیخ کنند. با این حال از بدشانسی درست در لحظه‌ای به پاگرده طبقه دوم رسید که موسیوزی در آپارتمانش را باز بازگرده بود تا بیرون برود. امکان برگشتن برای ترلکوفسکی وجود نداشت. ترلکوفسکی با عجله گفت اصبخی موسیوزی چه روز زیبایی؟ بعد صدایش را تا حد زمزمه محرمانه پایین پایی و اضافه کرد. از بابت دیشب واقعا متاسفم موسیوزی، بهتون اطمینان میدم دیگه هیچ‌وقت شاهد چنین اتفاقی نباشید. صاحبخانه نگاه سردی بود او انداخت و گفت: امیدوارم همینطور باشه. شما منو و همسرم رو بیدار کردید. طوری که باقی شب نتونستیم بخوابیم. تمام همسایه‌ها ازتون شکایت کردند. معنی این کارا چه بود؟ ترلکوفسکی با تردید گفت: من و چند تا از دوستان خوشانسی منو برای پیدا کردن چنین آپارتمان مجللی جشن گرفته بودیم میخواستم یک مهمانی پاکوشا به مناسبت اسپابکشی به خونه ی جدید بگیرم البته بدون اینکه مزاهم کسی بشم همش همین بود قرار بود فقط یک مهمانی کوچک باشه اما شما خودتون بهتر میدونید اینجور مواقع چی پیش میاد در حالی که حتی خوابش هم نمیبینید که مزاحم کسی بشید سعی میکنید اوقات خوشی داشته باشید بعد ناگهان همه با هم صحبت میکنم و قبل از اینکه بفهمید خودتونم با صدایی بلندتر از بقیه صحبت میکنید به هر حال من واقعا از این بابت متاسفم و بهتون اطمینان میدم که چون این چیزی دیگه هیچ وقت اکرار نشه صاحبخانه حالا دیگر مستقیما به چشمهای ترکوفسکی نگاه میکرد خوشحالم که اینو میشنوم موسیو ترکوفسکی و امیدوارم در این مورد جدی باشید چون در هر صورت باید بگم قصد داشتم برای اصلاح اوضا دست به اقدامات جدی بزنم، اقدامات کاملا جدی، نمیتونم اجازه بدم، مستجری به ساختمان من بیاد و باعث اخلال و بی نظمی بشه، بنابراین این بار ندیده میگیرم، هرچن همین یک بار هم زیاده، اجازه ندید باز هم تکرار بشه، این روزها پیدا کردن آپارتمان به قدری دشواره که دیگه جایی برای اینکه آدم با چنین کارهای کارهای ای همون رو هم که داره از دست بده باقی نذاره. اینو به خاطر داشته باشید. روزهای بعد ترکوفسکی مراقب بود تا بهانهای برای شکایت کردن به دست همسایه هایش ندهند. صدای رادیو را همیشه در پایین ترین حد ممکن نگه می داشت و هر شب سر ساعت ده به رخت خواب می رفت و کتاب و در آینده می توانست در حالی که سرش را بالا گرفته از پله ها پایین برود. او حالا از هر نظر یک مستجر محسوب می شود. یا تقریباً چنین بود. اما به رغم رفتار فعلیش نمی توانست از این احساس که هنوز هم به خاطر واقعی تأسفبار بار مهمانی بخشیده نشده خلاصی یابد. اگرچه به ندرت هیچ یک همسایه ها را می دید. اما گاهی در راه پله با اشخاصی برخورد می کرد. هیچ راهی برای دانستن اینکه این شخص یکی از همسایه‌ها بود یا از قوم و خیش‌های همسایه‌ها یا صرفاً یک فروشنده دوره گرد وجود نداشت. به همین خاطر برای اینکه کسی او را به بیادبی متهم نکند، به هر کسی که سر راهش قرار می‌گرفت، صبح بخیر می‌گفت. اگر کلاه به سر داشت، کلاهش را از سر برمی‌داشت و تعظیم کوتاهی می‌کرد و اگر هم نداشت، به همان تعظیم اکتفا می‌کرد. همیشه در راه پله یا پاگرد به محض اینکه کسی به او نزدیک میشد خودش را کنار می کشید لبخند میزد و در حالی که با دست اشاره میکرد میگفت بعد از شما موسیو و در صورت زن بودن بعد از شما مادم. به همین ترتیب هرگز در گفتن صبح به خیر یا اسب خی به سرایدار تعلل نمیکرد. اما در مقابل، سرایدار با نگاه سرد و بیاعتناایی که نشانی از آشنایی در آن نبود سلام و احوال پرسی او را بی پاسخ میگذاشت. تقریبا همیشه با کشاوی به ترکوفسکی نگاه میکرد گویی هر بار از دیدن او متعجب می میشد. جدا از این برخوردهای کوتاه هیچ ارتباطی با همسایه ها نداشت و حتی دیگر هیچ وقت آن مرد بلند و پرید رنگ را که برای شکایت به در آپارتمانش آمده بود ندید یک بار که به توالت رفته بود وقتی دستگیره را چرخان در باز نشد و صدایی از داخل گفت اشغاله به نظرش رسیده بود که صدای همان مرد بلنقد و پرید رنگ را شنیده اما از آنجایی که منتظر بیرون آمدن مرد نمانده بود چون نمیخواست مرد را به خاطر سر و صداهای آن تو مثل خشخش کاغذ توالت شرمنده کند هرگز نمیتوانست مطمئن باشد